ویس که از تندی و بیمهری پشیمان گشته بود از رامین اوزخاخاست و بران شد که با سخنان دلاویز سنگین دلیار را به رحم آورد کدام محبوب است که از عشق خونین و رخسار زرد عاشق پشمان نگردد و درد و تیمار بر دل نگیرد سمن بر ویس جوشان و خروشان دو دوچشم خونش از دو چشم جوشان همی گفت ای مرا چون جان گرامی دلم را کام و کامم را تمامی توی بخت مرا هم راه رادی تویی جان مرا هم تای شادی درخت خرمی را شاخ مشکن مه امید را در چاه مفکن اگر من با تو لختی ناز کردم و یا بر تا زمانی رشک بردم مخان از رشک من چندین فسانه مکن بر من جدایی را بهانه شوم تا مرگ پیش تو پرستار برم فرماند چون فرمان دادار جهان افروز رامین گفت از این پس نپنداری که از من برخورد کس نورزم مهر تا خاری نبینم زقم روشن جهان تاری نبینم دلستن برکنم گر دل دگربار کشد مهر تو یا مهر دگریار اگر صد سال تخم مهر کاری از او در دست جز بادی نداری کسی از عشق ورزیدن نیاسود بغیر از راه دشواری نپیم. سمن برویس دست رام در دست زداغ عاشقی بیهوش و سرمست همی گفت ای مرا چون دیده درخور شبم را ماه تا بیروز را خور زروی دوستی شایسته یاری زروی نام زیبا شهر یاری نبی روی تو خواهم زندگانی نبی کام تو خواهم کامرانی. بیازردم تو را. نیکو نکردم. بدین غم پشت دست خود بخوردم. مکش چندین کمان خشم آزار مزن چندین در آزار و تیمار. نباشد در اتاب نیکوان جنگ نه اندر نازشان بردن ننگ. چه روز آید مرا این روز بدتر که نه دل بین در بر نه دل بر اگر برگشت خواهی زود برگرد که سرما برکشید از جان ما گرد وگر تو بر نگردی ای دلاور به همراهی مرا با باخیشتن بر همی گفتی این سخنها ویس دلبر همی راند دست دو دیده رود بربر بر. دل رامین نشد زنلا به خوشنود زبست سختی تو گفتی آتشین بود وقتی ویس آن همه اتاب از رامین شنید و دریافت که سخنان پر مهرش در دل محبوب مؤثر نیفتاده است آشفته و پریشان شد و رامین را رها کرد و رفت این بار رامین از پس ویس روان شد و آنگاه میان دو دل داده تا بامداد سخنها رفت که گاه امید بخش و دلانگیز بود و گاه جان کاه و قمنگیز بشد ویس و بشد ماه جان تاب دلش پر آتش و دیده پر از آ. امی گفت وای من زین بخت وارون که گویی هست با بخت منش خون که با من بخت من چندان ستیزت که روزی خون من ناگه بریزد تنه من گر بدین حسرت بمیرد به گیتی هیچ گورش نپاشید و ویس دلبر از رامین جدا شد هوا همچون دمنده اجده شد سیه عبری برامد صف به دم و دیدار بیننده فرو است پشیمان گشت از گفتار بیبر زدیده سیل مرجان ریخت بر, بر. اینان رخش را چون باد برتافت سمن برویس را در راه دریافت چون مستی بیهوش از رخشان رفتاد افتاد سان بیدلان دربست فریاد همی گفت ای سنم بر من ببخشای مرا تیمار بر تیمار مفزای. نه در پوزش سخن گفتن توانم نبی تو ره به کام خیش دانم زبان از شرم تو خاموش گشته ربان از مهر تو بیهوش گشته ش ضمن تا از این پس و فرمان اگر کین کی آو مهر مرد پیش به خنجر برش کاو فن سینه‌ش تو خاموش جای دهون از که صد باره بگفتند دگر بر ره همان از سر گرفتند دراز شد گفتار ایشان جهان منده شگفت از کار ایشان دل ویسی چکوهی بود سنگین رخش همچون بهاری بود رنگین چو تنگ آمد به راویت بام گسسته شد حدیث ویس با رام دل رامین ز شیدایی به ترسید. دل ویسه ز رسوایی به تفسید همانگه دست یکدیگر گرفتند ز بیم دشمنان در کوش گرفتند دل از درد و روان از غم بشستند سرای و کوشک را درها ببستند تو گفتی آسمانی گشت بستر در او آن دو ثمنبر چون دو پیکر همه بالین پر از محبود و پروین همه بستر پر از گلنار و نسرین گهی پرباده جام زر گرفتند گهی سر و سهی در بر گرفتند اگرچه بود دلهاشان پرازار به بوس خواستندش عذر بسیار نشسته شاه بر اورنگ زرین نبود آگه زکار وی سرامین. رامین ندانستو که رامین در سرایش نشست روز و شب با دل ربایش همی با او خورد آب از یکی جام به تیغ ننگ ببریده سر نام به کام خیش در دام افتاده دو گیتی را به یک دلبر بداده یکی ماه نشات و نیک بختی ببرده یادشان شش ماه سختی مبادا اشقو گربادا چنین باد که یابد آشق از بخت جوان داد به اشقندر چنین بختی بباید که تا پس کار اشقاسان براید زمانه زن که بود اکنون بگشته است مگر روز بهی شندر گذشته شت. پس از آن که یک ماه ویس و رامین در کنار هم به شاد کامی زیستند رامین ویس را گفت از آن پیشتر که شاه موبد از حضور او در مرو و قصرش آگهی یابد بهتر است که به حکم مسلحت خود را بدون ماید آن گاهیلی جست یک منزل از شهر دور شد و دوباره آشکارا به شهر درآمد و به دیدار شاه موبد شده شاه را سناها گفت و آنگاه به وی سه ماه در مرف بماند و نهانی از وصل ویس کام یافت چو یک مح ویس و رامین شاد بودند به باق عشق چون شمشاد بودند جهان خوش گشت و کم شد برف و سرما در آمد باز پیشاهنگ هنگ گرما یکی منزل زمین از مرو بگذشت چو روز آمد دگر ره باز پس گشت همیشد بر ره مرواش کاره به درواز درون شد یک سواره همان در گرد راه و جامعه راه همیشد راست تا پیش شهنشاه خبر دادند شاهنشاه را زود که خورشید بزرگی روی بنمود جهان تابند رامین آمد از راه به پیکر همچو سروی بر سرش ماه چو پیش شاه شد آزاد رامین نیایش را دوتا شد سرو سیمین شهنشه شاد شد چون روی او دید هم از راه و هم از روزش بپرسید جهان افروز رامین گفت شاها نکو ناما به شاهی نیک خواها ترا جاوید بادا بخت پیروز ز بهروزیت بد خواهد تو بدروز مرا در کودکی تو پروریدی. کنونم سر به پروین برکشیدی تو دادستی مرا هم مال و هم جاه مرا هم بابی و هم نام بر شاه به فرمانت شدم شاها به گرگان توهی کردم در و دشتش ز گرگان کوهستان را چنان کردم به شمشیر که آهو را همی فرمان برد شیر چو از دیدار شاهنشاه جدایم تو گویی در دهان اژدهایم من آنگه شاد باشم زی خردمند که جان بد هم به فرمان خداوند چو شاهنشاه بشنیدین سخن زو سخنهای به هم آورد نیکو بدو گفت اینکه کردی خوب کردی نمودی راستی و شیر مردی مرادی تو باشد درفروز از او سیری کجا یابم به یک روز کنون رو برکش از تن تنجامی راه به گرما بشو و جامد دگر خواه شرامین باز گشت از پیش او شاد شهنشاهش بسی خلعت فرستاد اگر صاحب دلان با به عنایت بگشایند بقیه داستان و آنچه بر دل دادگان گذشت در برنامه آینده تقدیم می شود. دوشته با تنظیم نادر وزین با همکاری حایده وفایی سیمین مجید نجاهی سرخوش یوسف زمانی همدانیان شجره ازرا فریدون اسماعیلی، رضا موینی و آذر پژوهش موسیقی از علی تشوییدی پیه کننده برنامه منوچهر خلیقی زیر نظر امیر فریدون گرکانی